احساس بتالت از کمرکش هفته آغاز می شود از سشنبه ها سشنبه نه مجده شروع دارد نه نشاط پایان نه سهمی از ابتدا نه دانگی از انتها نه راهی سربالا که به امید رسیدن به ای بتوان نفس زنان و کوفت پیمودش نه سرازیر است که شادی ترک قلی را با شوق رسیدن به خانه و زمین گذاشتن کوله و کندن پوتین های چسبیده به پا و باز کردن دگمه های بادگیر و دراز کردن آسوده پاها را در خود داشته باشد. قله هم اما نیست. یادت باشد که ما یک هفته را به میل خود با یک شنبه آغاز کردیم اما همیشه چنین نیست. پس به داد شنبه ها باید رسید، آن را چنان لبریز ریز کنیم که به درون چهار شنبه ها سر ریز کند و از آنجا چکه چکه به درون کاسه آبی پنج شنبه ها بچکد. شنبه ها را علا رقم همه گرفتاری هایی که داریم با دیداری تراوت تازه و شاداب کنیم. سری به آن بیمارستان کوچک کودکان بزنیم که در آن خیابان قدیمی هنوز پردرخت به نای قدیمی دارد که همیشه از درونش صدای گریه بچه ها می آید. و صدای فریادهایشان و صدای تشر دوستداری سشنبه را با دیدار از بچه های دردمند آغاز کنیم اگر مجبور باشیم صبح سر کارمان برویم چطور اجبار با آغاز نمی خاند. زمانی که به بیمارستان کودکان می‌رویم، آغاز سه‌شنبه است، حتی اگر غروب باشد. ما اگر آفتاب را یک لحظه به درون قلب‌های خاکستری شده بچه‌های دردمند به تابانیم، عشق با قبای ارغوانی بلند، سوفیان خواهد رقصید. یک پا بر زمین خواهد کوفت. یک دست بر عرش، چنون که زمین یک هفته به ضربه پا بلرزد، عرش به اشاره دست. برویم دست در دست هم، از آن هفت پله مرتوب بالا، برسیم به با آن پیش خان، و به با آن بانو که انگار بسیار است، قهوه بیشکر سلام کنیم. سلام خانم، سلام ما باز آمده ایم با اجازه شما سری به بچه ها بزنیم به بچه هایی که دردشان بیشتر است و تنها ترند و دیشب بیش از دیگران گریستند عیبی که ندارد، بله چه عیب دارد کاش خیلی ها لاغل تعدادی مثل شما بودند بچه ها چشمشان به در خشک می شود پدرانشان کار می کنند مادرانشان هم اغلب بچه ها بیکس و دست خالی هستند تمام دنیا مال بچه هاست خانم خبرشان کنید خبرشان میکنیم باور نمی کنند حیف دروغهایی هست که حتی بچه ها هم باور نمی کنند. سعی میکنیم در قلب کوچکشان گیاه ماندگار چنین باوری را بنشانیم. شما ادبیات میبافید آقا، ادبیات تقلید نه این زندگی است. نه عین زندگی. ادبیات نوع ناب زندگی است خانم. انسان تا درد نکشیده باشد نمیتواند درد را بنویسد آنطور که ادبیات نوشته باشد. شما میتوانید بگویید که ما هنوز به لحظه انتبااق آنچه که باید باشد بر آنچه که هست نرسیده ایم. هنر، بر زندگی جاری شاید اینطور باشد بفرمایید زن خوبی است. قهوه هم ظاهرش نمی گوید که شکر دارد یا نه اما امروز دست من خالی است. دیشب قرار بود برایمان قدری پول بیاورند نیاوردند ته جیبهایت را بتکان. آنقدر نیست که دست گلی بشود اما چند آب نباد چرا؟ عیب ندارد امروز با گل خیال و چند آب نبات به دیدنشان می رویم. هفته دیگر با دستهای پر پر. بانوی انگار تلخ می گوید اتاق دویست و سه. در طبقه دوم وارد اتاق دویست و سه می شویم. ما را میشناسند. شناسند. لا اقل دو نفرشان. یک بار با گل و شکلات و شادی به دیدنشان آمده ایم. آن روز، پسرکی اینجا بود که یک پایش را بریده بودند. خدا لعنت کند راننده را که به قدر یک مورچه مرده هم شرف ندارند. اگر میشد آنقدر بیرحم باشیم که در برابر آن پا یک پای راننده را بگیریم دیگر هرگز هیچ دیوانه هیچ بچه ای را آنطور له نمیکرد. ناگهان دوید وسط خیابان، بچه ها طبیعی است که ناگهان بدوند دنیا باید جای دویدن بچه ها باشد، نه جای له کردن بچه ها. آنقدر تند میرفتی که چه کنی؟ جهان را نجات بدهی؟ یا بنشینی پشت میز قمار؟ یا در یک میخانه با چند رفیق بیکار زمان کشی کنی؟ هرگز در تمام زندگیت کاری به سود مردم کرده ای که حال تصور کنیم تند می تا شاید کاری برای کسی بکنی؟ تو دستم را میکشی و می گویی بیا برویم. و که معنی حرف تو را نمیفهمد تو هم که نمیتوانی با جدلهای منطقی جهان را تغییر بدهی میگویم با وجود این باید گفت چاره جزب جز به تکرار و خیر سرانه گفتن نیست راه میفتیم بغزم را فرو میدهم میگویم یک ریاضیدان خل حساب کرده است که اگر چاهی خالی به عمق اینقدر. و قطر این قدر خیلی بزرگ و گود وجود داشته باشد و مردم یک شهر کوچک با این تعداد جمعیت هر روز یک ریگ به درون آن بیاندازند بعد از این مدت که اصلا زیاد نیست دیگر چاهی وجود نخواهد داشت. گیل مرد مهربان چقدر یا زیادت خوب است؟ آشق عدد نمی فهمد. فقط این را حس می کند که عدد مثل عشق در بی نهایت خدا جاری است، عدد بی نهایت هست، خدا بی نهایت هست، عشق بی نهایت.